صفحه دیویست و دو سه ابو تراب ابو تراب گوش بده من جاویدم صدای مرا می من دیروز آمدم پریروز هم آمدم برای تو پول آوردم باز هم میآورم تو داری میمیری تو داری به پروردگارت برمیگردی گوش کن پیش از اینکه بمیری بگذار وجدان و روحت پاک و سبک شود تو می خواهر من چه شد فقط یک کلمه بگو مرده است یا زنده؟ فقط یک کلمه. تو حالا دیگر نمی توانی دروغ بگویی. خواهش می کنم عبو تراب. ابو تراب. بیهوده بود به شهر برگشت. بقیه آن روز را توی خانه یا جلوی در کوچه پلکید. همه اندرون تهی و خستش آشوب می شد و دردناک بود. از حرف زدن با لیلا یا نگاه کردن در چشم های لیلا پرهیز می کرد. قصر سریع به کاربانسرای پایینتر از حمام قبله درخونگاه رفت، جایی که محمد بنگی و مادرش نن احمد، زن قلوملی مرحوم، با سایر بچه خورده ها زندگی می کردند، محمد بنگی گوشه اتاق خواب و بیحال بود، جاوید کوشش کرد با او حرف بزند، بعد کوشش کرد با نن احمد که بدتر از تاج ما خانوم کوه چاق و هفهافوی بدخلاقی شده بود حرف بزند. اینها هم بیفایده بودند. نن احمد هم از ماجرای خواهر جاوید خبری نداشت. گفت هرچی بوده توی اون حیات اندرونی بود. خودشون بچه رو سر به نیست کردند. گفت آنجا آنقدر از این کارها کرده بودند که این یکی هم توش گم و براست بود. این یکی در این میان به معنی واقعی کلمه گم و گور بود سر شب روزنامه ها و شام ملک آرا را خرید گوشکی آمد آنها را یک گوشه دالان پنهان کرد ساعت ده که لیلا و شاه باجی به پشت بام رفته بودند جاوید دنبال کارهای شبش پا شد سراغ ملک آرا رفت از این هم داشت جانش به لبش میرسید. رسید گیوه هایش را پای دریچه آبنبار کند از توی آبنبار زد آمد، یک دست چراغ و یک دست بقچه کاری ملک آرا را داشت، رفت جلوی دریچه سرداب. ملک آرا باست مست و لول و گرسنه دریچه را باز کرد، چیزها را گرفت، اول درباره نسخهش پرسید، جاوید فقط گفت باید صبر کند. ملک آرا به او گفت داخل شود، چون صدای آنها توی آبنبار میپیچید خطرناک بود. جاوید نمی‌خواست وارد شود ملک آرا مجبورش کرد گفت نقشه ها و کارهای تازه دارد جاوید ناچار وارد شد دریچه سرداب را بست مانند دیشب با شلوار و پایین‌تنه خیس گوشه هسیر نشست ملک آرا گفت از لیلا چه خبر چیزی نفهمیده کار دیگه ای نکرده جاوید گفت نه شاید چیزهایی بو برده اما از سوی لیلا با و بیمی نیست. لیلا را کاری نداشته باشید. ملک آرا به قضا خوردن و نوشیدن سرگرم شد. سرش می رفت شکمش نمی رفت. گفت میونه تو با لیلا چطوره؟ جاوید سرش را تکان داد. ملک آرا گفت هان؟ جاوید گفت ما میونه ای نداریم. هیچ وقت نداشتیم. تازگی هم ندارد. علیک آرا خنده ی حلقو می کرد میدونم پسر جون میدونم اون واسه تو هیچ وقت زن نبوده توی باغبون من نگهش داشته بودم اما اون با حس چی کار کنه با حس بره پسر باغبون رو گول بزنه با با پسر کچل باغبون خاک برسری بکنه بیرونش کردم حالا اونها به کنار اون زن نیست به تو تحمیل شده بود نمی وقتی هم که خواستی برگردی است لابد ولش می تموم، کاپوت از دهنش ستایی در آورد که مرحوم قلوملی از لنگش در جاوید گفت لیلا تکلیف آیندش روشن است اشاره به کیف ملک آرا کرد ملک آرا خنده گفت بردار، هرشی میخوای بردار هر چقدر در اختیارش بذار مگه من گفتم نزار هرچی میخوای همین الان بردار. دست کرد یک دسته اسکناس درآورد توی مشت جاوید گذاشت. جاوید پولها را روی حسیر انداخت. گفت به موقش. ملک آرا گفت باشه هر جور تو بخوای. هر سازی جنابالی بزنی ما میرقفیم. اصلا بسپارش دست خودم. من به این زن بدی کردم. میخوام حالا بهش خوبی کنم. تلافی کنم. یعنی اون هم بدی کرد، خیانت کرد، اما یک موقع اون مال خود من بود. جاوید در سکوت به حرفهای ملک آرا گوش می کرد. ملک آرا گفت، حالا که تو نمی بسپارش دست خودم. من پاک و طیبه و طاهرش می کنم. بار گناه خودم هم سبک میشه. من دوباره میگیرمش. در اختیار خودم. زن هم ندارم، عقدش می کنم. میبرمش هر جا که خواستم برم میگیرمش این یکی رو هم عاقبت به خیر میکنم خواهر تو رو به دستت میدم لیلا رو هم پاک و تطهیرش میکنم این یکی از بار گناهان خودم رو هم سبک میکنم جاوید هنوز گوش میکرد حرفهای دیشب او را درباره خواستن یک زن یک تیکه به یاد آورد کم کم داشت به آنچه امشب زیر لجه سیاه روح این مرد دروغ و پست بود بومی برد انگشتش را به سوی ملک آرا دراز کرد گفت با لیلا هم کاری نداشته باش او زیر بال و پر من است ملک آرا با خنده گفت اون که واسه تو زن نیست تو که نمیدونی اون کی هست چی کرده اگه بدونی، اگه واقعا بدونی، میندازیش جلوی سکهای کوچه. تو هم خودت که گفتی، لیلا بعد از این آزاده. گفتی میخوای بهش پول بدید، دکش کنی. جاوید گفت، لیلا زن رسمی من میماند، تا روزی که خودش نخواهد، یعنی تا روزی که بخواهد برود. ملک آرا گفت، منم که همین حرفو زدم. خب، ملک آرا با چرب زبانی گفت، من فقط میخوام اگه یه موقع از این جریان و از این مخفیگاه های ما چیزی فهمید توی دست خودمون باشه. جاوید گفت. لیلا چیزی نخواهد فهمید. من از این به بعد در دالان را از بیرون قفل میکنم. ملک آرا گفت. نه قفل نکن. ممکنه شک داره. ممکنه بشینه بین اون یه چیزایی بگه که باز معمورین و نظمی چیها میریزن. از اون پدر سوخته آبزیرگاه همه چی بر میاد. جاوید ساکت ماند. بعد گفت من از اون نگهداری میکنم. ملک آرا مستانه اسکناس ها را دوباره جمع کرد. توی مشت جاوید تپاند. گفت این مال خودته. بردار. جاوید پول ها را نگرفت. گفت هنوز پول زیادی پیشش هست و بلند شد. ملک آرا گفت میگم بهتر من خودم باهاش صحبت کنم. با کی؟ با همین لیلا. جاوید به تخم چشمهای ملک آرا نگاه کرد. باز فریاد زد؟ نه. ملک آرا چشمانش از زیادی مشروب و تریاک قیلی بیلی میرفت. گفت، صدات رو بلند نکن بچه و مثل دیشبم نرو و دریشه رو به هم نکوب. تو که نمیخوای همه پاسبانها پاسبان ها رو بریزی اینجا سر من بیچاره. تو که نمیخوای همه چی رو خراب کنی. جاوید باز گفت. نه. لیلا هم نه. ملک آرا گفت. من فقط میخوام باهاش حرف بزنم. من که نمیخوام انگشتش بزنم که. مگه میخوام انگشتش بزنم. نه. بلند شد. تو هم که حب نخوردی. جاوید گفت. گفتم که لیلا در حمایت من میماند همین. هفت سال هم هست که دست از پا خطا نکرده. ملک آرا گفت. منم که چیزی نگفتم. مگه من گفتم دست از پا خطا کرده. من گفتم فقط باهاش حرف میزنم. برای بعدها. مگه من چیز دیگه ای گفتم. جاوید دیگر جوابش را نداد. از دریچه آمد بیرون. چراغ را برداشت و دریچه را بست. لولاها را کشید اما وقتی از توی آب سیاه آبنبار به سوی دریچه امباری انباری می آمد میان آب سرد خوشگش زد لب دریچه لیلا را دید که چراغ به دست نشسته بود او را نگاه می کرد و یک صفحه دویست و دو هفت. از آبنبار آمد بیرون دست لیلا را گرفت و با خشونت او را به آن حیات برگرداند گفت من به تو گفته بودم به این حیات و به هیچ چیز اینجا کاری نداشته باش با صدای خفه حرف میزد چرا اونجا توی آبنبار چی قایم کردی هیچی گفتم کاری نداشته باش زن. اگه میخواهی زنده بمانی تو داشتی با یکی حرف میزدی پشت اون سوتونها یه جایی بود که تو از اونجا اومدید بیرون خودم فهمیدم کجا بود جاوید دست او را گرفت او را کشید برد توی اتاق خودش میدانست دیگر پنهان کردن ماجرا از او بیفایده و خطرناک است گفت بشین خفشو گوش کن اگر به جان خودت و زنده ماندنت کوچکترین علاقه داری، دیگر پایت را توی آن آبنبار، توی آن زیرزمین، توی آن حیات نگذار. اگر بعد از این بفهمم آنجا رفتی یا حرفی زدی، قسم میخورم، قسم میخورم که میکشمت، میکشمت، تو که مرا شناختی. لیلا گوشه اتاق نشست، با ترس گفت، اونجا چیه، چی قایم کردی؟ هنوز به او آنقدرها اهمیت نمیداد که همه چیز را از او بیچون و چرا قبول کند. جاوید هم میدانست که با روح بدبین و فضول لیلا دیگر ممکن نبود او را از آن حیات دور نگه دارد ولو آنکه همه جا را هم قفل کند اکنون ناچار بود داستان پناهگاه ملک آرا را به لیلا بگوید خیالش را راحت کند. گفت تاو برو یه کمی چای درست کن دوتا استکان بریز بردار بیار بنشین تا بفهمی دنیا از چه قرار است وقتی لیلا رفت او روی رخت خوابش نشست زانوهایش را توی بغلش گرفت فکر کرد. از خدا خواسته بود که چنین چیزی پیش نیاید و قبل از اینکه کس دیگری از این سازش ننگبار و ناگزیرانه آگاه شود این ماجرا به پایان برسد اما حالا میدید که به این آسانی ها نبود و مانند سایر رویدادهای این سالهای شوم مقدور بود هر گونه سختی و کوفت ممکن پیش بیاید وقتی لیلا با استکان نلبکی ها برگشت، جاوید او را نشاند و کم کم به او گفت که ملک آرا در آنجا پنهان است. از قرار و مدار خودش با ملک آرا درباره افسانه چیزی نگفت. نخواست لیلا باز او را ریشخند و مسخره کند. از کیف پول و جواهرات ملک آرا هم چیزی نگفت، چون لیلا را میشناخت. فقط گفت خودش مجبور از چند روزی ملک آرا را پنهان نگه دارد چون آینده خودش و آینده لیلا به آن بستگی داشت گفت تا چند روز دیگر دست بالا تا یکی دو هفته یا یک ماه دیگر که سر و صداها میخواابید ملک آرا میرفت و گورش را گم میکرد بعد آینده آنها روشن میشد و به ویژه آینده لیلا خیلی تمین بود اما هیچ کس نباید کوچکترین بویی ببرد، وگرنه جان و زندگی همه آنها برباد می رفت. آنها خودشان هم قانون شکنی کرده بودند، با ملک آرای فراری همدستی کرده بودند. لیلا اول مات و بحت زده شد و ترسید، اما وقتی تا آخر به حرفهای جاوید گوش کرد خوشنود شد. گفت که دیگر پایش را به آن حیات نمیگذارد انگار نه انگار که ملک آرا آنجاست و جاوید آرزو کرد که لیلا راست بگوید و دست از پا خطا نکند بامداد روز بعد به لیلا گفت بیرون میرود کاری دارد زود برمیگردد اما یک راست باز به بیمارخانه فیروزآبادی سراغ ابوتراب رفت امروز دید همه جا را حسابی جارو پارو کرده و همه اتاق ها را تمیز کرده بودند گفتند آقای معاون برای بازرسی تشریف میآورند بیماران به اندک تمیزی و نوایی رسیده بودند جاوید ساعتی کنار جسد نیمه جان تراب نشست بیهوده او را صدا کرد نفس توی خرخره ابو از هر روز بدتر پس میرفت. جاوید کوشش کرد او را با آب سوپ لای دندانهای کلید شدش و دستمال آب گرم روی پیشانی یخزدش به حرف بیاورد. اما انگار یخزدگی مرگ ابوتراب هم مانند جوشش زندگی ملک آرا روح او بود. حتی وقتی مستخدمین و کارکنان آمدند به هول و ولا افتادند و گفتند آقای معاون برای بازدید وارد می‌شود او از کنار ابو تراب تکان نخورد اما امروز پیشامد دیگری به او کمک کرد آقای معاون پردنگ و فنگ وقتی آمد کسی جز دکتر منوچرخان چهرخان نزهت نبود که پس از هفت سال چاقتر و صاحب موهای خاکستری شده بود. دکتر وقتی جاوید را گوشه اتاق دید و شناخت اول اعتنایی نکرد. بعد وقتی پرسید و فهمید بیماری که جوانک از او بازدید می کند چه است، آمد جلوی جاوید ایستاد. به او گفت که انگار جاوید آقا هنوز دست از نیکوکاری و انسان دوستی بر نداشته است. در هر موقعیت دیگری جاوید توی صورت او تف می انداخت. یا اگر هنوز نسخه قدیمی ملک آرا توی دستش بود آن را پاره می‌کرد، توی پوزه دکتر نزهت پرت می‌کرد. اما امروز پاشد سینه دیوار ایستاد و سکوت کرد. دکتر منوچه خان نزهت خنده ای زد، دستوراتی داد و با خیلی همراهانش از اتاق بیرون رفت. اما چند دقیقه بعد دستور دکتر نزهت اثر خودش را کرد و پرستارانی با آمپول و دارو سراغ ابوتراب به فلک زده آمدند کاری که لابد باید روزهای اول می کردند. آن شب جاوید به موقع با روزنامه ها و غذا و مشروب و تریاک سراغ ملک آرا رفت. ملک آرا لولتر و وراجتر از همیشه از او خواست به درون بیاید. بنشیند، حرف بزند. منزل بیریا بود. جاوید همانجا تا کمر وسط آب سیاه ایستاد. خرت و پرت را رد کرد. او سخن دیگری نداشت جز پایان کار این ماجرا. هر وقت ملک آرا برای بیرون آمدن آماده بود، جاوید هم آماده ی حرف گوش کردن و دستور گرفتن میشد. وقتی از آبنبار بیرون آمد، امشب انباری و مطبخ خاموش و خالی بود. باغ ملک آرا هم خالی و حیات بیرونی هم خالی و بی سر و صدا بود. شب تابستانی آبستن پایان کار بود، اما ساکت بود، لیلا هم روی پشت بام خوابیده بود رفت روی تخت خواب خودش دراز کشید باز منتصر شد به سکوت سمج شب و به صدای سفید شدن موهای سرش گوش کرد دو, صفحه دو سه روز بعد آرامتر گذشت جاوید ملک را سر جایش نگه داشت لیلا را هم تا آنجا که میتوانست سرگرم نگه داشت و زیر نظر گرفت و ادامه داد که زندگی ظاهری خانه را هم عادی و آرام جلوه دهد. بدبختانه از سوی ملک آرا هنوز هیچ نشان و خبری از حرکت نبود. گرچه دلش میخواست نیم ساعتی به دیدن سریا خانم برود، با او گفتگو کند و از وضع زندگی و آینده او با خبر شود اما هنوز شرم همیشگی او از آن خانوم او را پرهیز می داد. سرعی خانم در این مدت چند بار به آنها سر زده بود. خواسته بود به آنها پولی بدهد. جاوید البته نپذیرفته بود و هر بار گفته بود که هنوز از ملک آرا پول پیشش هست. وضع مادی خود سریا خانم و آینده او روشن نبود او اکنون بیوزنی سی و چند ساله بود با دو تا بچه یتیم را هنوز در مدرسه فرانسوی ها نگه داشته بود جاوید شنیده بود سریا خانم اندک پولی توی بانک شاهی دارد اما با توقیف اموال رسمی ملک آرا، حتی خانه ای که حالا سرعی خانم و دکتر کیومرس خان در آن نشسته بودند، هنوز به نام ملک آرا بود و نبودن ممری و خانه ای که مال خود سرعی خانم باشد، جاوید را نگران او ساخته بود. و برای روزی که حسابش را با ملک آرا پاک و یکسره می کرد، خانم را هم، در سیاهه تومار ذهنی آدمهایی که سزاوار بودند افزوده بود. در روز آخر هفته دوم، یک سر دیگر به بیمارخانه فیروزآبادی رفت. امروز شنید که ابو تراب با رسیدگی اخیر پزشکان نه تنها بلکه اندک بهبودی یافته بود گرچه هنوز در بیهوشی و اقما به سر می برد. جاوید باز کنار بستر ابو تراب زانو زد، باز کوشش کرد او را اگر برای پنج ثانیه هم که شده از دهان مرگ که از پذیرفتن نوکر ملک آرا اکراه داشت، بیرون بیاورد. نشست و با او درد دل کرد. ابو تراب امروز وولهایی می زد، ناله هایی توی حلقومش می کرد که تازگی داشت. جاوید یک دست خودش را توی دست قهوه‌ای چرک و چغر او گذاشته بود و به صورت مرده و چروکیده و به جمجمه بدحیبت او که رنگ پوست انار خشکیده شده بود نگاه کرد. چند بار اسم او را صدا کرد. اسم خودش را هم به او گفت و اسم افسانه را هم به او گفت. گفت اگر نمی‌تواند حرف بزند اشکالی ندارد. فقط کوشش کند با اشاره دست یا ابرو اگر میتواند جواب او را بدهد گفت ابو تراب گوش کن اگر خواهر من مرده دستم را یک فشار کوچک بده اگر خواهر من زنده است دستم را دو تا فشار کوچک بده همین مرده یک فشار زنده دو فشار خواهش می کنم نه دست نه صورت نه ابرو و نه حتی یک یاخته ای از بدن نوکر ملک آرا هیچ کدام جمع نخوردند. به شهر برگشت. به اوضاع خانه و شهر توجه کرد. در شهر سر و صدای توقیف و حتی اسم ملک آرا کم کم از زبانها افتاده بود. اصلاحات کلی دولت و هر روز یک جور قانون و دستورهای تازه دولت همه را مشغول کرده بود. و جاوید داشت امیدوار میشد که به زودی همین روزها زمان حرکت ملک آرا فرا خواهد رسید نخواستین شب هفته سوم وقتی با نیازمنی های ملک آرا سراغ او رفت متوجه شد که تغییر تازههای در چهره و روحیه ملک آرا به وجود آمده بود امشب ملک آرا آرامتر بود و به روشنی انگار خوشنودتر به نظر میرسید. و با سر و ریش شانه کرده این قول سیاه گنده روی مخده نشسته و یله داده بود. جاوید فکر کرد این تجدید روحیه باید آغاز اندیشه خارج شدن از پناهگاه باشد. وقتی ملک آرا به او گفت وارد سرداب شود، جاوید وارد شد. دریچه را بست و چند دقیقه برای ملک آرا از وضع آرام محله، بامیل و شهر تعریف کرد. افزود که سرعی خانم وضع و آینده خوبی ندارد. گفت ملک آرا باید به فکر آن خانم هم باشد. ملک آرا گفت به موقش بچه به موقعش حق همشون در کف دست هر کدومشون گذاشته خواهد شد. بعد گفت تو هم نمیخواد جوش بچه های ملک آرا رو بخوری جوش زندگی و جوش وضع خود ملک آرا رو بخور پسر. جاوید سرش را انداخت پایین تکان داد ملک آرا گفت: و با من بهتر تا کن میفهمی؟ جاوید به سادگی گفت: بله ملک آرا گفت. دیگه اگه دیدم مثل چند شب پیش با من درشتی و نافرمونی میکنی با یه تیر خلاصت میکنم. من پیر و گرفتار شدم اما هنوز خیلی مونده از پا بیفتم. شیر شیر است گرچه پیر بود. حرف گوش کن. جاوید گفت شما هم گوش کن. از شب اول من و شما قراری داشتیم. من هنوز سر حرف و قرار خودم هستم. شما هم باید سر حرف و قرار و قسم خودتان باشی هیچ کدام از ما نباید پا از عهد و قرار بیرون بگذاریم ملک آرا گفت این حرفا واسه فاتی تومون نمیشه چی میگی؟ واسه من دیگه یللی تللی نخون ما انقدر تو این مملکت مار خوردیم که شدیم و تو از افعی بترس این چند سباه من مهمان تو هستم با من خوب تا کن تا ببینی فردا روزگار برات چی پیش میاره. جاوید از اینکه امشب ملک آرا دست بالا و روحیه توپ و تهدیدش را پیش گرفته بود نترسید، ملک آرا داشت زورهای آخرش را میزد. او هم بالای ملک آرا را دیده بود هم پایینش را. حالا که با پول چرب زبانی، فری به حقه نتوانسته بود او را برای آوردن زن یا آوردن لیلا راضی کند این لابد چشمه تازش بود. روزها و شبهای پیدرپی پی توی سرداب ملک آرا را مریضتر و سستر کرده بود. کاسه چشمهای فرقلمبیده و بزرگ ترکمنش رگههای خون داشت. لبهای عین بهزردش روی سیل های آویزان شده بود. نفس دهانش بوی اندرون و شکم خرابی را میداد که صد رحمت به نفس گندیده عبو تراب. جاوید گفت: «من هرچه می توانستم برای شما کردم. خوشحال بود که ملک آرا امشب هر نکبتی که داشت دست کم دیگر حرف زن را نمیزد. یا حرف خواستن لیلا را نمیزد ملک آرا گفت نسخه من چی دکتر نزهت رو دیدی دوادرمون درمون بواسیر و یوبسی من چی شد حادثه سه روز پیش توی مریضخانه فیروزآبادی داد جاوید رسید گفت من دکتر نزهت را دیدم اما در این مورد باید صبر کنید تاکی تا, تا موقعش ملک آرا گفت زود تا موقعش ملک آرا گفت دیگه حقه و دروغ سوار من نکنی که نابودت میکنم تو دهن نالوتی تو وا کن من میفهمم چند مرد حلاجی جاوید اهمیتی نداد چیز دیگری نگفت او فقط منتظر بود ببیند ملک آرا از وقت حرکتش حرفی میزند یا نه یا دستوراتی برای او در این مورد دارد یا نه گفت آقا این وضع فعلی دیگر زیاد نمیتواند دوام بیاورد لیلا فهمیده و با دهان لقی که او دارد من می‌ترسم ملک آرا گفت نترس وقتی موقع شد من بهت میگم باید چی کار کنی تو فقط مواظب حال و سلامتی من باش هستم من برای حفظ جان و سلامتی شما هر کاری را کردم و کنم ملک آرا با پوزخند سرش را تکان داد گفت عزای ما چه عزایی شده که مرد شور هم گریه میکنه جاوید گفت درباره حرکت از اینجا فکری تصمیمی ندارید ملک آرا گفت چرا چه تصمیمی چه وقت ملک آرا باز با پوزخند گفت به قول خودت به موقعش جاوید به چشم او نگاه کرد، اما ملک آرا باز فقط شعرش گرفته بود و شروع کرد بخاندن و خوشخشک شروع کرد دوباره وافور را روبراه کردند. جاوید زیر لب لعنتی کرد و بلند شد بیرون آمد. از بار گذشت، از زیر زمین و از مطبخ هم گذشت که حالا کم کم خیابانهای تابناک زندگیش شده بود. وقتی توی اتاقش خوابیده بود لیلا را دید که یواشکی از پله‌های پشت بام آمد پایین و آمد کنار او نشست لیلا لباس نوی صورتی رنگی پوشیده بود به سر و صورت خودش دست کشیده بود موهایش را هم شانه کرده بود و ریخته بود پشتش انگار گلاب یا عطری هم زده بود پرسید چه خبر مبر؟ جاوید گفت هیچی چیز تازه ای نگفته که چه وقت میخواد بره چی کار میخواد بکنه؟ نه بعد به صورت لیلا نگاه کرد گفت به تو هم گفتم به این کارا کاری نداشته باش لیلا گفت باشه من کاری ندارم جاوید چیز دیگری نگفت لیلا گفت چجوری میتونه توی اون دخمه زنده بمونه با اون همه ناز و نعمتی که اون پدر سوخته توش بزرگ شده بود. جاوید گفت، زنده است و دو نیمش باقی. به قول خودش شیر شیر است گرچه پیر بود. لیلا گفت، ایش، مردشور اون شکل اون چشمای گنده و قهوهی و سیبیلای درازشو ببرند.